یه دو تا بحث هم صدا دوره بعدی ام بی مون شما اس کردام 20 آذر شروع میشه اگه دوستان کسیو میخوان معرفی بکنن که تو حضور داشته از همکاران از دوستان این دوره رو به اطلاعشون برسونن که <تصفح> <تصفح> بعد, بعد از چه تاریخی هستش <تصفح> پنج صبح کدو بعدیمون 8:30 تا 1 از حدود 20 آذر شروع میشه یه هفته ممنونم نمیشه وسط بس که این که این کلاس رو برای وسط بله. <تصفح> هفته. وسط ۷۲ یه دوشنبه بعد از آن رو میخواهم اندازی حالا بله ولی عمومم صبح استقوالش بیشتر چون نمیرسن وسط ۷۲ برخواب اون هم هستش فروشش زیادش؟ زیادش؟ گامه؟ عالا که خب یه داره چکلیس ده. من چک رو تو فولدرتونم گذاشتم. که این چکلیس رو در حقیقت شما میتونید به این افراد توضیح بکنید و افراد یا افراد نمره بدن به خودشون یا شما به افراد نمره بدید. و براساس این چکلیست بیاد ببینید. توانمندی افراد در رابطه با فراینده یعنی رهبری چقدره خب که چکیز کامورا مشخصه از چهار آیتم یا needs improvement ان آیه یا ابریج متوسط یا در رابطه با اون آیتم یا اس strong یا N-O no experience with هیچ پجربه در آرت با این نداره سفره need improvement n یعنی نیازمند بهبود و توسعه است خوب و A یعنی average متوسط S یعنی strong قوی N-O یعنی no experience with disorder yani, یعنی هیچ چی هیچ اصلا خوب نیستش قوی نیست این موزه سوالت منظرم میخواهم اسم فایلشو اسم که... از من یه نمونه باز کردم. یه چکلیس خالی گذاشتم. اینو ما برای یکی از افراد تو سازمان انجام دادیم که مارک کم خورده در حقیقت یعنی مشخص شده. ولی این چکلیس به صورت خام تو فولدرتون هست. خدا خوب، بری یه سی آیتم این چکلیس. من خیلی سریع ریدیوم می کنم که دستتون بیاد که در حقیقت بر اساس این چکلیس شما می توانمندی توان رهبری افراد رو در سازمان اسکس کنید، اندازه گیری کنید. Assertiveness with others یعنی چی؟ جسارت داشتن باید. یعنی ببین یه رهبر خوب به جسارت داشته باشه خب چقدر جسارت داره که با نفرات دیگه با افراد دیگه تعامل بکنه شماره ی شماره دو Standing up for what I believe in چقدر رو اعتقاداتش وای میسته پافشاری میکنه رو اعتقاداتش آیتم شماره دو سه Mediating Conflict تضادها رو چجوری میتونه مدیریت بکنه کنترل بکنه اینا در رابطه با خودتون نمره بدید چقدر شما تضادها رو یعنی اگر دو نفر با هم دعوانشون بشه شما چجوری میتونید این کانفلیکت رو مدیریت بکنید سوده اینی که مار شده برای چه سه فروشه خب Realistic Goal Setting چقدر من فر و هدف گذاری برای خودش میکنه سومیش چی <میدینتی کامفلیک> یعنی رو چجوری مدیریت میکنه چهار یعنی چجوری یعنی چقدر هدف‌گذاری میکنه برای خودش؟ خب؟ شماره 5 پابلیک سپیکنگ. واقعا شما در رابطه با خودتون می‌تونید به هر جور دیگه‌ای واسه حرف بزنید؟ این خیلی مهمه ها. آره یعنی با بکنید، تخصصی که دارید. شما مثلا ایمیل، آقا برید هر جور در تو با ایمیل صحبت بکنید. این مهمه این یه ای ای ای آمله که میتونه تاثیر بذاره محبه برای که شما رهبر خوبی هستی یا رهبر خوبی نیستی شماره 6 Group Facilitation من الان میگم شما این افرادی که تو کلاس هستن یه روز ببر ایوین درکه یه نهاری بهشون بده یه مثالی را مطرح بکن یه مثال کار بودی اونجا باشون تمرین بکن همه هپی و خوشحال برگردن این میشه Group Facilitation یعنی بتونید گروه ها مدیریت بکنید خب Brain storming and idea generation چقدر عقاید جدید فرد داره خب Brain storming and idea generation چقدر جدید داره شمایه هشت 6 گروه داره group facilitation یعنی گروه شما چشیلی میتونید مدیریت کنید شما Thinking creatively and outside the box چقدر خلاقی خلاقیت چقدر دارید خب آساید چی یعنی خلاقیت نه بیرونه چیز بیرون چی نه خلاقیت داشتن یعنی یعنی outside the box بکیم کنید شما نوع listening skills مهارت گوش کردن یه رهبر خوب بچ شنبنده خیلی خوبی هم باشه تا کی تعرف مقابله داره صحبت می‌کنه خیلی خوب بتونه گوش بکنه و تحلیل بکنه طرف مقابده خب بعدی استرس اند تایم مدیریت زمان و مدیریت استرس شما چقدر مدیریت زمان میتونید انجام بدید و چقدر استرس رو میتونید مدیریت کنید استرس از خودت بعدی اورگانایزینگ ا پروژکت اور مثلا فرض کن مثلا میخوام یه همایش رو برگزار بکنم شما یه همهشی مدیریت کنیم؟ از ای تازه چکلیست هم بتونیم باقا چیکار کنیم ولی بتونید مدیریتش کنیم خب؟ شما یه بعدی leading a group true and نظارت بتونید رو یه گروه داشته باشی نقاط ضعف و قبطشو متوجه بشید وقتی یه گروه داره یه کار رو انجام میده من بگم تو نظارت کن بگو نقاط قوت و ضحف این گروه چیه؟ آسانی فیددک اند اینکوریجمند چقدر شما بازخورد میدید الان کلاس مدیریت داریم میره جلو شجوری تو به این کلاس بازخورد میدید خب؟ بعد شماره چهاردن سپرو others. میتونی دیگران نظارت کنید؟ ما در دوران مدرسه مبصر داشتیم محبصر ها همین ها هستن خب؟ سپرو وایزنگ بعضی رو میدیده خیلی قشنگ کلاس میتونستن. کنترل بکنن تحت دنوان نماینده کلاس یا مبسر کلاس ما اینها رو میگیم اسکیل رهبریشون خوبه اسکیل رهبریشون بالاست خب، نکته بعدی Holding others accountable دیگران چقدر مسئولیت پذیر شما نگه می‌داری یا مسئولیت پذیر میکنیدشون شمانه ۱۶ Diagnosing a problem in a group مشکلات چجوری شناسایی میکنید اصلا تو زندگی خودتون تو زندگی شخصی خودتون الان مثلا فقط ارتباطت با خانمت خوب نیست میتونی مشکل دیagnose کنی مشکل کجاست؟ مثال دارم میزنم ارتباطت با همکارت خوب نیست میتونی مشکل رو شناسایی کنی؟ واقعا مشکل کجا؟ درست دیagnose کنی نه احسازی، نه اون چیزی که خودت دوست داری خب؟ شماره 17 اکسپریسو فیلینگ اند شماره 17 خیلی شایگه چقدر احساسی تو کار داری کار میکنی تو سازمانی که داری کار میکنی چقدر ایموشنالی میبینی با عشق حس. حس داره کار کردنت نه که بی حال و بی حوصله یعنی با عشق کار با عشق شماره 18 رول مدلینگ نقش بازی کردن رول مدلینگ یعنی نقش نقش بازی کلا یعنی چی؟ بیت بوناموت عملیاتی بود. این کنی داری یه کاری انجام میدی ولی در واقع هیچ کاری انجام یعنی نمیده, نمیده. یعنی مشکلی یعنی مدید باید بنت باشه خوب فیلم بازی کنه. بازیگره خیلی خوبی برد بس اکتران رو بهش اضافه شده اینه جدیدان جد جدید رو هم میگم من گاه لوقات تلفن رو برمیم صبح سرحال آره سرحالم آره. قیله خب ساعت ده صبح میخوام یه فیلمی بازی کنم ده صبح دقیقه انا این, این حالت شب مثلا در ماه دو سه باری اتفاق میفته خب تلفن رو برمیدارم مدیر رو طولی شروع میکنم به داد زدم علکی ها حالا مثلا ی اصلا هم نیستن. نیستم هرگی گوش میده میگه او این گشت چه اتفاق برایش افتاده هم اصلایه تلفون که قطع میشه گاهی که نه نگاه بزن اینو میشونه میگه رول مادلنک فیل بازی کنی خب؟ نکته بعدی responding effectively to critical feedback به نوارد بو رانی که تو سازمان به وجود میاد تو چجوری فیدبک نشون میدی؟ سریع نشون میدی، از کنارش میگذری تحقیل میکنی؟ Persuading others in a group چقدر افراد نفوذ داری؟ افراد چجوری رو به جلو هدایت میکنه خب؟ generating interest and enthusiasm in others چجوری شوق و اشتیاقا در دیگران به وجود میادی؟ ببین، الان من توی یه کلاسانگان تدریس میکنم چجوری شوقان رو میکنم مشتاق کنم؟ که میدونید آشغانه به درس گوش بدید شماره 22 Organizing and running a meeting یه جلسه رو میتونی مدیریت کنیم؟ یه جلسه یه جلسه یه ورودی داره یه خروجی داره یه زمان داره بطونی مدیریتش کنی خروجی بگیری خب Delegating to others تفیز اختیار میتونی بکنی به دیگران قدرت تفیز اختیار تفیز اختیار کردن قدرت میخواد یعنی یه مهارت میخواد اعتماد کنی به دیگران بهش پشت تفیز کنی شماله 24 Handling conflict within a group مشکلات رو در یه گروپ بتونی حل کنی شماره 25 Motivating yourself خودت میتونی با انگیزه کنی؟ تو وقتی که خودتو نتونی با انگیزه کنی، دیگران نمیتونی با انگیزه کنی ببین، من اگر میخوام دیگران با عشق کار بکنن، اول خودم باید عاشق کار باشم درسته؟ اول خودم ها کاش کار باشیم نکته بعدی developing a team or cohesive group بتونین یه تیم تو سازمان به وجود بیاریم فرایند تیم یعنی افراد با هم همکاری کنن رسیدن به یک هدف مشترک. managing finances or budgets یه پول ممنون یه به نتوان به شما بدم خب به شما بدم. بگم کلاس کلاسه بردار ببر شمال برگردون بتونی مدیریت مالی انجام بدی خیلی سخته نه؟ ولی مهمه نکته بعدی Providing ethical leadership اصول اخلاقی رو باید بتونی رعایت کنی نکته بعدی Honoring and learning more about diversity آموزش پذیر باشی هم آموزش دهنده باشی و هم آموزش پذیر باشی بعد نکته آخر Dealing well with change در رابطه با تغییرات و تحولات مقاومت نشون ندید خوب برخورد کنیم الان من این کلاس کلاسی میخواب تا پنج ادامه بدم برخوردتون چجوری ها؟ درسته؟ درسته مو، مشابه شناسی میکنی استاد، اون رو آره. حالا خب این چک برای که شما بتونید توانمندی رهبری خودتونو و توانمندی رهبری افرادو تو سازمانتون اساس کنید، اندازه‌گیری کنید و بتونید بهبود ببخشید. حالا خب استاد این سی تا اگه درس در این قضیه خلفه بی بحثمون ادامه بدیم. توا里面 یه, یه سریاشون همدیگه رو نغز میکنه چهجوریه؟ چی همدیگه رو نغز میکنه؟ مثلا یه سری کارا رو واقعا نمیشه در کنار رو انجام داد. مثلا باید. مثلا اینکه هم رضایت همه رو جلب کنی هم با یه بودجه کم بخوای این کارا رو انجام بدی این میشه موقع آیتم ببخشید. مدیریت یعنی حرکت در محدودیت ها آیا شما در سازمان محدودیت نداشته باشی، محدودیت مالی نداشته باشی، محدودیت منابع نداشته باشی، محدودیت نیروی انسانی نداشته باشی، کاری نداره که. کاری نداره که. مهم اینه که شما بتونید در محدودیت فرایندو مدیریت کنی و به رو جلو حرکت بدی فرآینده. حالا فرایند سازمان. خب بریم سراغ بحث خودمون. و بحث آخر. بحث آخر خب دوستان ما بحث هدایت رو گفتیم رهبری تأثیر زیادی رو بحث هدایت در سطح سازمان داره بعدی ما در رابطه با هدایت بحث انگیزش و ارتباطات انگیزه یعنی چی؟ میزان راهنمایی نیروی انکه باعث کار انجام دادن کار میشه نیروی دقت کنید دقت کنید ما دو تا مفهوم لغوی داریم لغتی خب یه رضایتمندی داریم درسته؟ یه انگیزش داریم رضایتمندی یعنی ستیسپکشن انگیزش یعنی درسته یا رضایتمندی انگیزش اید تو تولقاتی دیگه؟ ها؟ آه فرق اید فرق میکنه. انگیزشی؟ انگیزش میگم دیگه دیگه. که انسان رو با به حرکت میکنه ولی نزدیکی آرومیه که انسان رو با که انسان رو به حرکت میکنه ولی در خط مستقیم پایین حرکت کرده. <تصفيق> هستی که من میخوام مریکت رو پاهم روی جلو بدم اما اونستی که میخوام برسم رضایتمندی هم میشه رضایت رزیر... خال خودم رضایت دارم دوست دارمش آشقش هم گرم چیزی خوش نبودن از خود بشه دقیق چون چون برای رضایتمندی انگیزه دارم که درسم برمون خود دارم دوستان افراد در سازمان ممکنه راضی باشد ولی با انگیزه نباشد خب افراد ممکنه راضی نباشن ولی با انگیزه باشن این دو طب هم کامل متفاقه تیم رضایتمندی در به انتظاراتی که یه فرق از سازمان داره و سازمان رو محبت میکنه به انتظاراتش پاسخ میده مثلا شما داری برای من کار میکنی انتظار داری یه منی تو من حق بگیر من یه منی تو من حب تو میدم تو راضی هستی متوجه هستی؟ یا انتظار اینه با توجه به تخصصی که داری مثلا سمنیتون تو حقوق در واقع بسازی و سمنیتون هم میسازی، راضی هستی ولی ممکنه با انگیزه نباشی داری تو سازمان ما کار میکنی؟ انتظار داری، تو به موقع بگیری و میگیری، راضی هستی، ولی با انگیزه نیستی چون انگیزه برمیگرده به اون حس درونی افراد به اون پیچیدگی های ذهنی افراد مثال میزنم من الان وقتی به شما تدریس میکنم از تدریسم راضی نیستم چرا؟ چون تدریس برای من منفعت اقتصادی نداره یه واقعیت یه ها خب نداره پولی اصلا برای من نداره ولی با انگیزم برای تدریس چرا؟ چون علاقه دارم به این کار متوجه هستی؟ شما اون که توی سازوانی داری کار میکنیم رو دور بریم اصلیه، صحبت کردی شما درات با کار کرد تو اصلیه تو،, تو بریک اصلیه رو نمیدونم رفتید یا خدا قسمت نکنن یعنی من نمیدونم افرادی که اونجا کار میکنن چجوری دفونیم یه محیط گرد و فوقلاده آلوده فوقلاده آلوده و گرد هیچ تفریه نداره هیچ تفریه نداره یه منطقه از بین کوه و دریا یه چیز اصلا واقعا افتضای دیوانا میشه من مثلا صبح که میرم مثلا بعد از ها که برمیگردم نمیده دیوانه میشم دیوانه میشم افرادی که اونجا کار میکنن رضایت دارن چون خیلی خوبی دارن میگیرن ولی با انگیزه نیستن انگیزه شغلی ندارن خب ما در سازمان برای اینکه بتونیم بکنیم راندمان و افزایش بدیم در ارتباع نیروی انسانی باید به انگیزش بپردازم موتیویشن دوستان خیلی خیلی خیلی مهمتر است از رضایتمندی خیلی مهمتر است. اشتباهی که من دو سال پیش در سازمانم انجام دادم اومدم حقوق پرسنل و متحبلش کردم خب یعنی آبرج 70 80 درصد نیروی پرسنل رو بردن بالا خب آره یعنی اینا یه دقیقا یه مفهومش اینه میگود شد حداقل یه رفاه سطحی جدولی بردیم و متحول کردیم دنبال چی بودیم دنبال افزایش راندامان در سطح سازمان بودیم خب پرسنل راضی بودن ستیسفای بودن ولی این ستیسفکشن یه مدت کوتاهی اتفاق یعنی بعد از این مدت کوتاهی همه اینا یادش شد برشون و حقوق ها مردیم بالا، که آقا یه پکیچ های انگیزشی رو دیگه نمیدیم، دیگه حقوق بالا داریم میدیم ولی قافل از اینکه افراد به اون حقوق عادت کردن و به مرور زمان گنبال پکیچ های انگیزشی بودن ولی دیگه پکیچ انگیزشی وجود داشت. الان من دارم حزینهش رو پرداخت میکنم، هو بالا دارم میدم ولی پرسونه با انگیزه نیستن من یه سید به بگم توجه به انگیزش بسیار, بسیار بسیار بسیار مهمتر است از رضایت من بید شما ممکنه؟ مثلا دارم خدمتون بیزنم ایام مثلا مقرب از اون خب؟ این تو واقعه با اینا تستش کردم، دیدم هستش کردم میارد به کل پرسونن یک پکیش میدیم برنج و روغن و مرغ و مکارانی و یک پکیش میدیم این پکیش برای هر نفر به این دیلیز ۱۰۰ تومن دیلیز ۵۰۰۰۰ ولی تأثیراتش بسیار بسیار بسیار زیاد انگیزه دادن به ممکنه به پرسنل یه پاداش بدید پاداش های کوچیک ولی مستمر پرداخت کنید که اینا رو هی با انگیزه بکنید این تأثیراتش بسیار بسیار بسیار, بسیار بالاتره متوجه منظور من هستید انگیزش یا موتیویشن در سازمان بسیار بسیار اهمیت داره دقت بکنید من یه توضیح بدم ما درسته صحبت از انگیزش یا موتیویشن میکنی عبارت از حالت درونی میل به تلاش فرامان جرت رسیدن به اهداف یه حسی رو باید در افراد به وجود بیاری حس به وجود بیاری میدونی؟ میل افراد افزایش بده. ای با ستیس فکشن اتفاق نیافته با رضایت مندی طرف میگه آقا من مثال دارم میزنم حزینه زندگی یه میلیونه. یک کلی میدونم درامت درم راضیه ولی در این بر نیست با انگیزه باشه اصلا در این بر نیست با انگیزه باشه برای افزایش انگیزش انگیزه ها چراهای رفتاری کارکان اصلا هستن آنها خود ریشه در نیاز افراد دارن چرا انگیزه مهمه؟ چون هر کسی یه نیازی داره یک پیچیدگی داره همه افراد در سازبان هر کدومشون یک مدل ذهنی داره یک پیچیدگی های ذهنی داره. اینا باید شناسایی بشه و نسبت بهش پاسخگویی بشه افزایش انگیزش در سازمان باعث افزایش و شدک را رام ما در سازمانش آره، آره و به خاطر همینه که، آنه بهش میرسیم به خاطر همینه که افزایش انگیزش برای پرسنل در سطح سازمان کارش بسیار سخت. هروسم در رابطه با انگیزش، اینکه که شما افزایش انگیزشو در سطح سازمان بخواید ایجاد کنید، مدل خاصی وجود نداره. من اکثر تئوری رو خدمتتون میگم. یا مدلایی رو خدمتون میگم برای افزایش انگیزش. ولی مدل استانداری وجود نداره برای افزایش انگیزش. دقت بکنید. جاه انگیزه انگیزه ها چرا های رفتار های اصلا یعنی ارتباط با رفتار کارکنان با شخصیت افراد در سطح سازمان داره و برمیده به نیاز های افراد در سطح سازمان دقت کنید سه تهوریه مهم در رابطه با انگیزش خب سه تئوری مهم تئوری شماره یک تئوری آغای تیلور فردریک تیلور تیلور در رابطه با انگیزه میگه میگه هر زمانی به افراد پول دادی افراد با انگیزه میشن تیلور میگه انگیزه ارتباط مستقیمی با پول داره حالا هزار تومن ده هزار تومن ست هزار تومن یه تومن دادن پول به افراد باعث این میشه که افراد با انگیزه بشن پس تیلور میگه انگیزش ارتباط مستقیمی با پول داره یعنی پول باعث با انگیزه شدن افراد در سطح سازمان میشه این به درسته هم شما الان گفتین میگیرید توضیحاتتون گفتین خب که برای یه مدت ممکنه باشه ببینید تئوری تیلور تئوری کاملی نیست در رابطه با انگیزش خب چون عوامل دیگری هم هست که باعث بی‌انگیزگی پرسونال یا انگیزه دار شدن پرسونال میشه فقط اون نیست خب پول به تنهایی پول لازمه ولی کافی نیست خب به خاطر همینه که آقای مزلو تئوری معروفی در رابطه با انگیزش داره اینو دقت کنید فوق العاده تئوریشه تئوری معروفیه در رابطه با انگیزش آقای مزلو الان برای براتون مزلو تهورش در رابطه با انگیزش میگه پول به تنهایی باعث با انگیزه شدن پرسونل نمیشه چون پرسونل نیازهای متفاوتی دارد و خواستاهای متفاوتی دارد آن چیزی که مدیر باید بداند که بتواند پرسونل رو با انگیزه بکنه اینه که نیازهای افراد شناسایی بکنه و نسبت به نیاز افراد بیاد واپنش نشون بده خب مظلوم مظلوم تئوری معروفی داره به نام مسلس مظلوم یا hierarchy of مظلوم مسلس مظلوم مظلوم چی میگه؟ دقت کنید مستلس مزلوشی. مزلو شید مزلو میگه انگیزش مزلو میگه انگیزش یعنی نیاز افراد یعنی نیاز افراد یعنی شما باید برای با انگیزه کردن افراد در سطح سازمان نیاز اینها رو شناسایی بکنید و برطرف بکنید تمنیش, تمنیش در سازمان یه نیازی دارن یه نیاز اولیه دارن نیاز اولیه‌شون چیه ماسکلا فور و فور تو اون میگه همه افراد در پله اول در سازمان یه نیازی دارن به نام بیسیک او نیدز بیسیک, بیسیک نیازهای اولیه بعد مثلا معاستها مثلا آب تازه خوراک ببستید، من اول باید مسکنم اوکی باشه تا به قول معرفی بیای در با انگیزه با من صحبت بکنیم رسول یعنی ساعت با نه. باید نه، نه شما باید اینو بدونید که مسکن افرادتون باید اوکی باشه برای کار کردن یعنی چی؟ من وقتی کار کنم تو هش گرده سعی میکنم پرسونلم رو از هش استفاده بکنم چون پرسنلی که از هشگر استخدام میشن برای کارپونه ما تو هشگرده نیازهای اولیتشو بیشتر محتفظ میشه مشکل هم رو نقل ندارن نزدیک کار خونه است میدونین؟ که من اونجا دارم میدم با حضینه های زندگیشون همخانی داره فیدات آخر پس نیاز اولیه مهمه بله دوست عزیز شما یه نیرو استخدام بکن تو سازمان و طرف خونه نداشته باشه آه. و با معروف اجاره نشین باشه ما این دو هم اجاره می‌خواد تو پول می‌خواد یک کلی ملخو بش بده. سن آدمو نباید بدیم. روز اول میخوام با این رو استخدام استخدام بکنن روز اول ازش تو چک لیست استخدامم سوال می‌کنه خونه داری؟ نداری؟ چقدر اجاره می‌دی؟ تمام اینا روز استخدام تحویل میکنی گد میاریم چه نفر من این نصف مشکل. ما الان مشکل اساسی که دارم مدیر فروش هم خونه نداره تو تهران تو هر کاریش بکنی مشکل داره تو هر کاریش کنی مشکل من که نیمیتونم برش خونه بخرم که میتونم هر کاریش کنی مشکل داره هر سال بعد چه بدونم پیش ف... چیستش از پیمنت خونهش و اون پول پیش داره افضایش بده تا هر سال اجاره خونه میره بالا این هر سال داستان ما بایین داریم میده سازمانم بلاختی یه سری محدودیت هایی داره پس بیسیک مهمه نیاز اولیه برای انگیزه تر شدن افراد در سطح سازمان مهمه درسته؟ مرحله بعدی اول نزلو میگه وقتی که بیسیک نیت مرتفع شد اینه شما از مشکلی سر بیسیک نیت نداشتید. یک نیاز دیگه در رابطه با افراد به بوجود میاد خب سیکیوریتی امنیات، سکیوریتی، امنیات. افراد در سطح سازمان باید امنیت شغلی داشته باشند. هر زمانی احساس کنند که امنیت شغلی ندارد، این حس رو داشته باشن بیانگیزند. این واقعیتیه. یعنی ما تو سازمان خودم این مشکل مطرح باند دارم. ما با پرسنل با نوت درست ها، درصد ها قراردادهای ها های سه ماهه می‌بندید طرف می‌دونه ممکن بعد از سه ماه گره می‌بندید با وقتی قرارداتی یک ساله می‌بندید می‌دونه بعد از یک سال ممکنه بره متوجه هستی؟ شما اگر دنبال با انگیزه شدن افراد در سطح سازمان هستی جاپ سیکیریتیشون رو ببرید بالا بله، افراد ریلایبر و قابل اعتمال و قابل اعتقار رو دار سازمانتون میتون های دو ساله و سه ساله باشن تنظیم بکنید. نه همه ها، با همه ها نمیگم. اونایی که واقعا قابل اعتماد اطمینان اصلا نیروی خوبی هست میتون قرارداد بلند مدت باشن. واسه شما هم اول چه کردم نه بعد هم یه مدت. یعنی که اول اول آره اول کارش نمیشه. من نمیگم اول اولی اول کاری تو عقد بیسیک نیستش کنید بیسیک نیتسش که علب بشه نیرو اول وارد سازمان میشه دوباره بیسیک نیتسش نه دوباره سکیوریتی بعد سکیوریتیه اول داغه اول بیسیک نیتس بعد دوباره سکیوریتی میره بعد از سکیوریتی چه نیازی به وجود بیاد امکانه اجازه تام میگه مرحله بعدی socialization یعنی ارتباط socialization یعنی ارتباط socialization یعنی ارتباط متوجه هستید من اگه یه نیرو رو بخوام دخلش رو بیارم مثلا مدیر تدارکات رو گفتم نامه زده بود دو سال پیش تا شیش ماه ندیدمش همه فقط ندود نخواستم، دو جلسات نمیخواستمش ازش نظرخواهی نمیکردم ببین، داغون شد خب، رنش های مختلف وجود داره، لازم نیست که بعض فرما چه راحت جلسه که مثلا ما در ماه مکنه یه بار، دو بار، سه بار جلسه داشته باشیم متوجه نمیخوامش دو جلسه همین کافیه شیش ماه، داغون شد یعنی دیگه دستاش سیدود به زمین این مدل، دهیم خب؟ این یه ربی بباشر آقا من اینجور صحبت کنم سوشیان داریم یه موقع از تو میخوای می این رو موتیویت کنی، صداش میکنیم تو جلسه نظرشو میخوای، میدونی ارتباط باش برقرار میکنی، همین ارتباط برقرار کردن باعث موتیویت شدن طرف میشه من یکی از همکارانم پروژه خیلی خوب رو انجام داده واسلش کردم گفتم من فهمم تشویقت کلام خیلی خوبی خیلی ممنونم تشکر گفتم من جمعه کلاس مدیریت استراتژیک دارم هر جمعه بیا سر کلاس مثلا به عنوان ادریس آره یعنی بعد رفت در نظر بهش فشارم هر روز جمعه اجبسا <تصفيق> نمیومد سر کلاس مدیریت استراتژیک میشست ولی خب خیلی موتیویشن خیلی تاثیر داره یعنی میدونی مثلا کانت می حساب شده آقا بیا بشی کلاس من یاد بگیر این یعنی داره این یعنی با مدیریت ارشد بده سوشالایز می‌کنه. خب یه موقع شما هر سه ماه یه بار ما, ما, یه ما. من به تو سازمان دارم هر سه ماه یک بولد ما کردن می‌ذاریم. کوچیک کوچیک کوچیک کوچی. آخر سال یه بزرگ می‌ذاریم. یعنی افش تا شام فارق از کار از ارتو با کار نداره. یه نهایی ما هم ها حاضراتون سازمان پدر اینو بهش میگن سوشیالایزیشن یعنی ارتباطی رفت و آمد بعد از سوشیالایزیشن چیه چه نیازی ممکنه به وجود بیاد سلف استیم یعنی احترام سلف استیم یعنی احترام آره ازفه نفس احترام کانسپنسر چوالایی داشته بخواهی بخواهی یعنی احترام بذاریو یعنی افراد دوبال احترام هم. دوستان پیر من، پیر زن متخصص غیر متخصص، دانشمن، غیر دانشمن جوان، پیر، زن، من همه دوبال احترام شما اگر به نیروی انسانی احترام نداری بیموتیفیت میشه هر کسی که باشه فرمین همه نیروهای انسانی در سازمان ايه ثرا ما احترام هو بعدی، بعد تو گفته آقای مزلو سلف سلف اکچوالایزیشن دقیق معنیشو خانم شما نمیدونی یعنی اون چیزی میگن فکرم هم درست باشه با هم ست اکچوالایزیشن یعنی میدونی طرفی حسی کنه همه افراد این نیاز برای از پیدا شما برای سازمان بعد از سال من اهمیت داره کارم برای سازمان کار سازمان اهمیت داره؟ می‌دونی چی دارم میگم وقتی که افراد حس داشته باشن که کارشون برای سازمان اهمیت داره موتیویت می‌شن دقیق کنید چی اهمیت اهمیت آره خب آره. ببین من نو ساله دارم تدریس میکنم کسب و کار خب؟ صادقانه اینو دارم بهتون میگم نو ساله من تحتیلات نداشتم یعنی شاید به جرعت میتونم بگم بوده مثلا بعضی مواقع جمعه مثلا خونه بودم یا کاریکی از کشور که بودم شنبه یه شنبه مثلا خونه بودم چون خب معمولا میدونی که کلاس های MBA و کلاس های مدیت همش آخر عبطت چه در ایران، چه در خارج از ایران؟ خب؟ نه، ولی یه حسی من سر کلاس میکشونه باقر تو یه حسی نیدونی احساس میکنه تو جامعه هستی یعنی من مدرس حس میکنه تو جامعه و دارن یه عمزش افتیده رو خلق میکنم خوش کن، خوش کن سال سرم روزت ریاضته بعد چیز چی؟ اون که سختتر بود چی رو؟ اون ریاضت بیس روزه 300 صفحه خب ای رو بود. <تصفيق> <تصفيق> ما کارمون مثل روحانی میبونه خب؟ روحانیون هم همیشه ستیسفایه و موتیویتیم چون با جامعه حرف میزرن آره؟ حرف میزرن با آتش نشان ها آدم های موتیویتی هستن جدی هم میگم اینا, اینا طبقاتی که صورت داده شده مدرسین روحانیون خب آتش نشونم اینا اینا آدم های موتیویشن چون حس میکنن کنن ارزش ابسورد دارن میکنن برای جامعه پسش کار آدم های هستن. چون احساس میکنن کنن ارزش ابسورد فرق میکنن برای جامعه یه پسش بله پول در میاره پول خوبی در میاره ولی بله بله مهمتره موتیویشن میینه بیماری مختلفون رو میینه بعد بیماری رو که معالجه میکنه حال میکنه لذت به داره مهندسین آی بعد از یه مدتی دپرس میشه میدونین سرش تو کامپیوتر نرم افزار و آیپگی بعد می یه حسی ممکنه بشونده ممکنه نمیال در باشه ممکنه این حس بهشون دست بده که این کار من چه ارزشی داره ها ارزشی برای جامعه داره این واقعیت یا این تحیقات که صورت داده شده من برای تقات ارزش زیادی قدم تو کارکن خودمون تلاشکاری که داره یک قطعه رو تولید میکنه مطمئن قطعه داره تولید میکنه با این تلاشکار این قطعه میره کجا، کجا نصب میشه چه سایت افکت میتونه داشته باشه چه تأثیرهای مثبت و منفی میتونه داشته باشه ما این تو کارکنه انجام دادیم تو شرکتمون، من اومدیم دوره آموزشی باداشتیم برای پرسنل. بیشتر گفتیم بابا این ریسک که رو تولید می‌کونیم میره تو این دستگاه می‌شید دستو اینجوری این, این قصه های تو کار اینجوریه این, این تاثیراته داره حس مصطبتری می‌کنه یعنی احساس می‌کنه با جامعه در ارتباطه اینو ما بهش می‌گیم سلف اکچوالایزیشن این واقعیتیه اگر شما دنبال افزایش انگیزش تو سازمان خودتون هستین برای پرسنالتون القا کنید به وجود بیارید کنید که پرسونل، پرسونل سازمان شما کاری که دارن انجام ده چه ارزشی افسوده میتونه برای جامعه داشته باشه اینو بابنی شدیم سرف اکچوالایزیشن و تمام نیرو برای از یه مدت نگه حد برسن میخوام میدوند کارشون چه ارزشی داره باور شرح نشو؟ خیلی مهمه خب پس ببینید آقای مظلوم و هایرکی آف مظلوم مسلس مظلوم میگه basic needs, security, socialization, self-esteem و self-actualization لایه های مختلف نیازمندی افراد در سطح سازمان جمعی افراد در سطح سازمان با این هست؟ کار ما همینجوریه، بسا آره؟ همی هم. به ایت به خب، نوشتی؟ بریم سراغ تئوری آخر تئوری آوی هرزبرگ آوی هرزبرگ هرز... مردم فایزنده <تصفيق> آره هرزبرگ اینا آره، چیزهایی هست هرزبرگ چی میگه تئوری هرزبرگ هم تئوری کاملیه نسبتاً تئوری کاملیه در رابطه با انگیزش هرزبرگ میگه برای با انگیزه شدن پرسنل در سطح سازمان بیایید عوامل نارضایتی را در سطح سازمان مشخص بکنیم و برای عوامل نارضایتی، عوامل رضایتمندی مشخص بکنیم یعنی چی؟ هرزبینگ میگه هلی ما پرسنل تو رو موتیویت کنیم برو مشخص کنون چه عوامل باسه نارضایتی شونه خوب آقا ندادن بام دیر پرداخت کردن حقوق نداشتن پکیچ های رفای تفریحی متوجه هستید محیط آلوده اینا رو مشخص کن هرزه می آقا در پله اولی محسس مشخص کن سمت چم دیس یعنی عوامل نارضایتی خب به من میگی ام نارضایتی شما توی سازمان دو بچه چیزاییه فکر می کنیم حقوق ها؟ بگو من امکان داره حقوق باشه حقوق پایین می تواند یه نارضایتی باشه درسته؟ مکان نامناسب مکان نامناسب، دیگه؟ چرا، چون معلق کارتون حسن آباده دیگه چی می باشه؟ ایش داره داره. ها؟ چی میرن شما بساره؟ فشار کار فشار کار اوکه سه عوامل شما شناسایی نکنیم تحت عنوانه دیس ستیسفایرز عواملی که باعث نارضایتی افراد در سطح سازمان میشه خب؟ حفظه یک وقتی عوامل شناسایی کردی؟ حالا بعد ستیسفایرز ها شما شکست کنیم ستیسفایرز رضایتمندی، عوامل رضایتمندی بله، حقوق شما پایینه ولی بله حقوق رو افزایش بدی، همانش توانشو هم نده دید میگه اگر دی ستیسفایر سارو شلاسای کرده عواملی رو بذار که به نوعی این عامل نارضایتی رو میتونه بهگود ببخشه یا کملنگ‌ترش کنه حقوق پایین یا عامل نارضایتی تو سازمان شما شاید مثال دارم دیزدارم، حسن چکار میتونه بکنه برای هر دارد دارد دارد بعد از هر چند ماه، یه یه چیزی، یه پاداشی بباداش. که انگیزه شروع رو پاداش در پریودهای زمانی این میتونه یه باشه بب. درسته؟ مکاره نااماناست رو چیکار می‌کنی؟ میگم خب من خودم هستم اینجا. نه اینکه نشد که اینا باعث نارضایتی پرسونا بشه. چیکار؟ یه ساتیفایرز فرارش ب. چیکار میتونی بکنی؟ چیه کنم؟ خودم مشاوره مجانی بهت می‌دم. مکاره نااماناست از حسن آباد از من مشاوره رو بگیر. چیکار بکنی؟ یعنی میدونی صبح مثلا میخواد از خیابان شریعتی به یه چیزی بکشمتش. درسته دوره ولی یه جاسبه دیگه یه داشته باشه بکشونتش بله داشتن سرویس بسن ولی خب دیگه ها چی گفتیم؟ محیط داخلی, داخلی مثلا همین محیط داخلی سازمان یعنی میدونین؟ یک کاراتور میادین؟ محیط ممکنه پونزه ملیون، بیس ملیون من این محیط داخلیتو انقدر یه مقردشه این اینکروف میکنه و زیبا میکنه که نیروی انسانی لذت میبره که اونجا کار کنه و این آمل باعث در کشوندرش به محل کار میشه فشار کارش کار میکنه فشار کار هر موقعی که فشار زیاد باشه فشار کم میکنه نه، چی؟ اون موقعی که همیشه که نیست شاید یه باشه اون موقعی که غازات شد نه بحسی. فشار کار وقتی که بالاست چی کار استرس بالاست دیگه مثال کمک هزینه سفر بدیم کمک هزینه. <تصفح> هزینه سفر مثال دارم میزانه نمیتونی سازمان خودش اجرا بینه مثال خب کمک هزینه سفر آقا ممکنه شما سالی یه پکیج مثلا نمیدونم تور مشهد تور کیش تور شیراز به چهار فرد پرسنل دیت انتخاب بکنی کشی بکنید خب این میشه ساتیسفایرز ایندی ساتیسفایرز مدل هسپ برای موتیویشن یک مدل کاربردی عملیاتیه که شما در سطح سازمان میتونید اسسس کنید چه عواملی باعث نارضایتی افراد میشه توی ماتریس عوامل رضایتمندی رو براش در نظر بگیرید که بتونید یه خود اون فشار کم بکنو کم رنگترش بکنید اوکی سوال خاصی هست یه سوال قرار رمیشونو بگم پیدا ها کردیم آها اصلا پیدا ها بودید که پیدا کنید و اینا خب دیگه بودیم دن سایزنگ و رن سایزنگ اما من سوالشونو جوابشو بدم آه خب اما نجازه رو دید سه ای بود بایی بگم جلسه ما تموم شد من من هفته آید شما جلسه کلاس مدیریت بازاریابی داره بارد خویه خب؟ نه دوستان ما هستم دوستان خیلی کنید؟ من مسلس استراتژی رو اولا من یک درست دیگه بیشتر لفت من شما نیستم فکر بکنم دو سه ماه آینده بشه اگه اشتباه هم داری که دو ماه آینده مدیریت استراتژیش. بشه خب؟ من این کانسپت مدیگت استرانتیجی که اونجا برای شما باز. بازم خب این اصلا بفهمین شما سوالتون رو ب... بکنین من. گفته بودی که دن سایزینگ و رای سایزینگ توی بروند از 3M قرار می نیره آها آها خیله خوب اجازه بدید ما سه تا ایم تو تری گفتیم مودا، موری، مورا درسته؟ مودا چی بود؟ ها، فعالیت های حزینه ساز درسته؟ موری چی بود؟ حصف فعالیت‌های های موازی و مورا یعنی اضافه کردن فعالیت‌های های ساز دان و رایت سایزین جزه موداست، موری یا موراست من کنم دان سایزین موداه. دن سایزین مودا موریه موری مودا و موری ببینید، دن سایزین مودا میشه یعنی فعالیت حضینه سازه شما میخواهی کارشش بدید رایت سایزین یعنی شما فعالیت های مبازی را در سطح سازمان میخواهی حضب کنید جهت بالا بردن راندمان میشه؟ موری, موری. درسته؟ یعنی رایت سایزین میشه موری دن میشه مودا اوکی؟ okay. دان سازی میشه مدا، رای سازی میشه موری. بعد یکیم که هم بچهها گفتن چیه؟ و... سازمان. هی بچهها فرزند سازمان. هی کجا جناب؟ چه مدیریت استراتژیک؟ دیگه؟ هنیه بیازم اومدی که شارژ شروع می‌وزیم. اونو من علاقت براتون میگم. خب، اجازه بدید. من شنبه بعد از او از ساعت سه و چهار تا هفته هشته بعد از او محسسه هستم متوجه استید و اگر سوال خاصی داشتید میتونید بیاید پیش من جمعه های بوده یکی دو ساعت محسسه هستم دو سه ساعتی مثلا برای ساعت یازده در نظر تا یک مثلا این بازه زمانی من محسسه هستم که میتونید اگر سوالی نکته خاصی بود مطرح بکنید و بیاید این سوالات در رابطه با شرح وضایف الان شما شرح وضایفی کی تهیه کرده؟ شما تهیه کردی درسته؟ شرح وضایفو که تیه کردی اگه ممکنه بده به من اینو یه زده مالتی شرکنه نه نه نه تایپ شده برای من نه نه. تو این هفته بفرست تو این هفته حتما برای من شرح وضایفو بفرست اوکی؟ مثل توی من کنم جان؟ ایمال کنم برای, برای من آره آ نه نه نه نه بایبر هستن من بایبر بایبر تو بایبر بفرستم ایمیلتون هم فایل تو بایبر همینه اندام میخوام خدمتون بگم اولا من نهونم بیان یه دونه یه دونه فرم من دارم برا من ایمیل شهر وظایف تو وای برم شهر وظایف تو بفرست بعدی ببینم من هفته آینده ساعت یک یه یه وقتتون رو میگیرم یکونیم یکونیم تا یک و چلپنگه یه یه روی وقتتون رو میگیرم من رو شهر وظایف به صحبت خیلی خیلی با بایم خواهیم کشم دوستان این کلاس یه کلاس خیلی... من یه چند تا نکتر بگم بعد سی گودبای رو بگید این کلاس یه کلاس خیلی خوبی. من شاید نمیدونم خیلی دورای این بیام من معبر گذار کردم تعدادشو نمیدونم و درس مبانی از ساختار و سازمانی هم برای خیلی از کلاس ها مطرح کردم ولی این کلاس کلاس جزء کلاس های خیلی خوبه که اکثر دانش که سر کلاس هستن متوجه میشن ندارم من فکر کنم متوجه میشن خب لو یاد سوالاتی که میکنن من میفهمم که تو را دایرکشنه هاتنی سواله درسته علاوه من خواهشی که دارم این کلاس کلاس اولی کلاس اول از درس از رشته ام ای بود مدیریت کسب و کار کلاس بعدیتون خیلی جدیتره خیلی تخصصیتره پیشنهاد من ادوایز من به عنوان برادر کوچکتر شما اینه که سر هیچ کلاس قیبت نکنید چون مطالب به صورت فشرده داره گفته میشه مثلا معنی تئوری مزلو رو خدمت شما گفتم شاید بعدم بهتون بگم شایدم نگم ولی ای گذشت میدونید این تئوری مزلو و مهمم هست بعد بدونید بعد بدونید حد امکان حد امکان سر کلاسه ایم ویف نیبت نکنید خب؟ تمام درست شما از اهمیت بسیار بالای برخورداره ولی من اگر بخوام هایلایت و بولد بکنم مدیریت بازاریابی درس بعدیتون خیلی درس مهمیه آمد. که البته آیه شما اسمی تونم فراموش کنیم من, من امرین هستم من قازمی آیه قازمی شما شاید من, من چاندام شفافی هستم و روک شاید نیاز شما کمتر باشه چون هیشون سر کلاس کندوی بازاریابی نشسته خب ولی درس مدیریت بازاریابی یه درس بسیار بسیار مهمه ش... و اگر در حقیقت واقعا سر این کلاس نباشید درس و متوجه نشی مشکل پیدا می کنید خب درس مالی و حسابداریتون رو خیلی جدی بگیرید بسیار بسیار بسیار جدی بگیرید و بحث مدیریت استراتژیک ما این دروس رو در دوره ام بی ای اساتیدی از که ازشون استفاده میشه به جز خود من اساتید واقعا هرفه این هستن واقعا کار کرده متوجه هستید دوره ام بی ای اساتیدی که در دوره ایم بی ای تدریس میکنن تعدادشون شاید در ایران زیاد باشه ولی اساتیده و معروفی که دوره های دروس خاصو در دوره ایم بی ای برگزار میکنن واقعا تعدادشون از انگشتان دست کمتره خب و خوشبختانه تمامی این اساتید رو ما در این کلاس ایم بی ای داریم متوجه هستیم ما از مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی مون تا مدیریت مالی و حسابداری و بازاریابی بازاریابی از اساطید بسیار خوبی از آقای, آقای خویه که حالا از دوستان ماست ولی از آقای دکتر ناسعیفر فر شما خواهید داشت خانم فرانک جواهر دشتی رو شما تو کلاستون خواهید داشت این اساطید خیلی خوبی هستند در موزه بازاریابی اصول فرون مذاکره آقای دکتر کیانه که حالا ما حتی میگرم اینا همه اسما بای دیفالت ها ممکنه مثلا عوض بشن ولی اینا جز اساتید ثابتی هستن که در دوره تدریس میکنن یا مثلا خدمت شما عرش شود که در درس مالی توان دکتر خان محمدی یا خانم زاره اینا جز اساتید فوقلاده فوق فوقلاده, فوقلاده عالی يعني یعنی نشده تا الان کلاسی رو مثلا آقای دکتر خان محمدی به اصلا دانشوان ناراضی باشن من ندیدم خب تا حالا و من خواهشی که دارم این درست رو کاملا جدی بگیرید و در ام بی ای واقعا سعی کنید درسی رو غیبت نکنید یا جلسه رو غیبت نداشته باشید من مطمئنم بعد از گذراندن 15 تا سابجکتی که در درست در دوره ام بی ای شما می‌گذرند واقعا نگرش شما متفاوت خواهد شد در حوزه کسب و کار چون دانش متفاوت علوم متفاوت رو یاد می‌گیرید و این نگرش متفاوت میشه من اینو رو شکی ندارم مطمئنم صد درصد مطمئنم انشاءالله که موفق و باشید. باشین هم که تشکیل دارید از رو گویش من هم یه مسیج کوچولو اومدم دیروز. یعنی هستم اگر دیدید من ریسپاندی ندادم چون معمولیت بودم اینترنت کانیک نبود من خوشحال میشم اگر شما ارتباط نزدیکی رو با من داشته باشید هر زمانی سوالی داشتید زنگ بزنید من قول میدم شما رو نپیچونم خب به معروف محروف ریسپاند جواب بدم بایسته که هستم تلفنم هم هر زمان به هر سوالی بکنید من در خدمت شما هستم انشاءالله که موفق و معییت باشید میبینیم اتون All the best بس